بسم الله الرحمن الرحیم بر آستانه روز جمهوری هن بخش دری که آل ایندیا رادیو یک مشاعره فارسی دری برگزار مینماید بنده از تمام شورای مهمان در استودیو آل ایندیه رادیو استقبال می کنم در فهرست شورای این مشاعر استاد بلقیس فاطمہ حسینی دکتر برلام شوکلا دکتر نقی اباس کیفی دکتر مهدی باقر و دکتر عزیز مہدی ہما از دهلی شاملن بے مناسبت فرارسیدن روز خجستہ سالگرد جمہوریہین تبریکات سمیمان در خدمت ہمای شما عرض می کنم و با ان ملیک ملک شعرہ بہار ہر کرا محر وطن در دل باشد کافر است مانی حب الوطن فرموده پیغمبر است از استاد خانوم حسینی خواهش می کنم کہ این مشاعره را به نام خداوند بزرگ و متعال ما این مشاعر را آغاز می خوش خوشبختانی در این بزن شاعران جوان دهلی تشریف دارند و ما خوشحالیم که این روز جمهوری ما برای ما روز استقلال و آزادی و قوانین در برگزار کردن این برای ما بسیار مهم است. و ما در این زمان می خواهیم که همون احساسات آزادی و استقلال را که ما داریم اونو به مردم نشون بدهیم که ما برای چی این مشاهره را آغاز می کنیم که همه می دونند که این پنی نفر که اینجا حاضر هستند برای این رای کردن شعر خود این شاعران جوانان اگرچه از زبان فارسی دری دور هستند ولی با وجود این بسیار ما خوشبختیم که در این فضای هند شعرا را داریم و هیچ موقع نصیم دلنشین شعر از ما دور نمی شود. نصیم اگرچه صبح و شام می وزد ولی در گلستان شعر و ادب همیشه این می و ما از این لذت می بریم. از دست استعمار هر چه بر ما گذاشت نیست فقط تک بیت همه داستان را میگوید لالسن هر عزو ما میراس خار داغ اوست کی به مرهم صاف سینه افگار ما به مرهم صاف گردد سینه افگار ما منو ول دعوت شاعره برامن زاده ای که برای ما افتخار دارد و ما خوشوقتیم که دکتر بلرام شکلا را معرفی کنم این استاد زبان سانسکریت هم است و دو زبان شعر می شعرهای شیرهای حافظ را به سانسکریت ترجمه کرده است و در حالت شعر کرده است و در اوزان و بحور تسلط دارد دکتر بلرام شکلا این از لحاظ شعرگویی باید بگوییم که این بین المللی شده است و شعرهایش در ایران و هند مورد پسند مردم است من میگویم که چند شعر برای شما ها ارائه بده بسیار خوشحال هستم که پیش شنوندگان با شعر فارسی دری حاضرم یک غزل پیش شما ارائه میکنم بوت من بُتَی من از خدایت نازنین است بُتَی من از خدایت نازنین است ببین کفرم زیمانت حسین است ببین کفرم زیمانت حسین است برایش ترک دین و ترک ایمان برایم عین ایمان عین دین است در آن که بوت را دید زاهد در آن جایی که بوت دید زاهد همانجا چشم من الله بین است تو میگویی همان است و همان است من این گویم همین است و همین است پیش افغانیان محوه فغانند جبینه چینیان زو پرز چین است به چشمه یه مردم پارس روخی او روخه او چون بهشته برترین است، تمام هندیان هندوی رویش، به دلهاشان شان فکر آن نئین است. زتار زلفشستان تار زنار، که نور قشکشان زیب جبین است، قسمبر ها آسمان آسمانها کسی چون او نبر روی زمین است، روخ غارت غارتگره بود در دلم بین خدای لامکان اینجا مکین است برای اختتام آفرینش برای اختتام آفرینش نگاه محشرش هش آفرین است سپاس هستم خیلی سپاس گذار هستم یک غزل دیگر پیش خدمت شما می‌آرم عاشقان را ز لَب خوش دهنان احکام است عاشقان را ز لَب خوش دهنان احکام است بوت من هر چه بگوید سخن اسلام است بوت من هر چه بگوید سخن اسلام است از لب یار نگوهش ز شکر شیرین تر از لبه یار نکوهش ز شکر شیرین تر و از لبه غیر ستایش بتر از دشنام است. هر لباسی که پیه یار بپوشی پوشی نغز است. هر لباسی که پیه یار بپوشی پوشی نغز است. تار ناور بره چکم از احرام است. زاهد و شیخ به توحید نگاهم نرسند. هر طرف روی کنم روی بوتی خوشنام است یار من کار من از دست لبو دندان رفت کام من پیشت و در لطف سخن ناکام است اترفردوس گر از نطق من آید شاید اترفردوس اگر اترفردوس گر گرز نطق من آید؟ شاید منظره طبع منان یار بهشت اندام است سپاسگزار هستم یه غزل برای دخترم که دختر نوزاده هست برایش نوستم دخترم گل به دارم از گل نازنین گل به دامن دارم از گل نازنین در برم مه مه ترز ماه برین در برم مه مح مهترز ماه برین خانه من باغ خانه من باغ و رویش همچو گل چشم من زنبور و حسنش انگبین خانه من باغ و رویش همچو گل چشم من زنبور حسنش انگبین چند ماه گرچه ماه شد هنوز فقط چند ماهه بود اون روزها که این غزل سروده شد چند ماه گرچه ماهم شد هنوز ماه گشتز از کشت حسنش خوشتین. ماه گشتز از کشت حسنش خوشتین. چین غرک شد نیلو فر اندر برکی غرک شد نیلو فرندر برکی راست گفتی بد بود انجام کین و بیتی آخرش که گر ندیدی غنچه خندان بشاخ گر ندیدی غنچه خندان بشاخ دخترم را در کنار من ببین بسیار خوش سپاس بسیار, بسیار, بسیار, بسیار خوش با شنیدن استاد شکلا من دکتر نقی باز کیفی که شاعر جوان از دانشگاه دهلی است از و از او میگویم که اینجا شعرهای خود را ارائه بدد قبل از اینکه چیزی شروع کند من میخوام یه شعر در مورد این انشاءت بگویم در معرض خورشید سحر اچ نمایش با نور تجلی جزیاء نارق و بسرا خیلی ممنون خیلی سپاس گذارم خدمت پروفسور خانم بلقیس حسینی و دوستان و بخش دری رادیو،, رادیو هند همچنین پیش از این که این غزل را خدمت شما بخوانم روز جمهوری هند را به همه شما تبریک ارس می کنم و حالا غزلی را تقدیم سماعات شما شنوندگان عزیز می کنم لطفی کنو خورشید درخشان برسان بخت لطفی کن و خورشید درخشان برسان بخت ما را چو غباری به سواران برسان بخت از ترهٔ آنیار روادار نسیمی یک شمه ز انفاس بهاران برسان بخت تا تا کی غم ناکامی و هجران و توهی جام یک قطره می از لب جانان برسان بخت دلتنگی دیدار عجب آفت جان است دلتنگی دیدار عجب آفت جان است کاری کن و در محفیل یاران برسان بخت ترکان سمرقند و حسینان بخارا از دهلی خسرا به خراسان برسند ترکان سمرقند و حسینان بخارا از دهلی خسرا به خراسان برسند نیکوست نیکوست آن چیز که آید به کف از دوست نیکوست آن چیز که آید به کف از دوست اندک برسان بخت فراوان برسان بخت خیلی ممنونم و با اجازه دوستان غزلی دیگر را تقدیم شما میکنم که عنوانش هست هدیه دل ناگهان مرا ربود مثل عطر ناب تو. ناگهان مرا ربود مثل عطر ناب تو، در کتاب کنه ای عکس بیجاب تو. ناگهان گذشته ها مثل آن که زنده شد باز من جوان شدم. خیره بر شباب تو. مثل آن که نغم خان جیر جیرکان ماست مثل آن که میدمید روی ماه تاب تو مثل آن که می وزید با نسیم نوبهار مثل آن که می وزید با نسیم نوبهار مثل آن که می پرید گیسو صحاب تو برگی از آن کتاب ناگهان زمین فتاد دستخطی از تو بود شعر با خطاب تو برگی از آن کتاب ناگهان زمین فتاد دستخطی از تو بود شعر با خطاب تو بعد تو نگاه من گشت چون پگاه من دودمان آه من می میرسید تاب تو هان قبول میکنی هدیه دل مرا هدیه دل من شاعر خراب تو هان قبول میکنی هدیه دل مرا هدیه دل من شاعر خراب تو پیش از آن که عکس تو گپ زند گذاشتم پیش از آن که عکس تو گپ زنت گذاشتم بوسه سوال خود بر لب جواب تو پیش از آن که عکس تو گپ زنت گذاشتم بوسه سوال خود بر لب جواب تو خیلی ممنونم خیلی علی اقای گفی ماشاءالله اینجا شاعرانی که هستند همین نازکندیش هستند و شعرهای شنده لذت می دهد. واقعا غزل است که اگه عشق نباشه حسن نباشه ذکر پیام و سل و دوستی و وسال نباشه اون غزل نیست پس آقای کفی واقعا همه شنوندگان عزیز را حتما شاد و خوش می خیلی من حالا من یه شاعره دیگر پیش شنوندگان عزیز اسمش را می برم که دکتر مهدی باغیر است. مهدی باغیر این شاعر عزیز من طوری شعر رو که ما نمیتونیم اون احساسات و ادراک را احساس کنیم. این تحرک جویی اجتماعی در شعرش زیاد حویده هسته. یه شعر برایش می خونم گویی به غیر واسطه در گوش خاکی گویی به غیر واسطه در گوش خاکی رازی که زون خبر نبود جبرائیل را این گونه احساسات در شعر ما بسیار می بینیم و دکتر باقیر خان لطفا از شیر خودشنوندگانی عزیز را شادکام به نام خدا ضمن تبریک به مناسبت روز جمهوری هند غزلی را تقدیم میکنم که عنوانش هست وطن عشق آن کیست که من را برساند به من من آن کیست که من را برساند به من من معنای تمام است برای سخن من از فکر روخ توست چراغم تارم. ای زلف تو اندوه شکن در شکن من در محفل ما بر لب رندان سخن از توست نام تو نیفتاده هنوز از دهن من خوشحالیم از توست همه رنج من از توست ای گمشده در ساختن و سوختن من ای گمشده در ساختن و سوختن من گلهای وجودم همه از جنس بهار است منتکش پاییز نباشد چمن من جز درد دیگر نام ندارد دل عاشق، جز عشق دیگر نام ندارد وطن من با این همه در ماتم و اندوه نروید جز وسله لبخند تو بر پیرهن من غزلی دیگر رو تقدیم هزار و شرمندگان خودم میکنم که انوانش هست وام عشق جان و دل وام عشق الفت اوست جانو دل وام عشق الفت اوست دستهایم رهین بیعت اوست عشق بی التفات او مرگ است زندگی در نگاه الفت اوست این آن ره نیافتند به دل سینه من حریم حرمت اوست سر ما فدیه ره اندوست این زمان تا همیشه نوبت اوست این که ما کشتگان راه ویم، این هم از لطف و محر و همت اوست اقل تفلیس در دبستانش اشق از بندگان دولت اوست اقل تفلیس در دبستانش عشق از بندگان دولت اوست حرف اهل جهان تمام شده است گوش چشم انتظار صحبت اوست شنوندگان عزیز خوشوقتم که ما اینجا باید بگم که خوشوقتیم که ما اینجا در این حضور شهرانی را که ما رفیق دردهیم اتفاقا کتابی از ایران چاپ شده که اسمش هفت شاعر اس فردا و شاعران چندین شاعران را اینجا معرفی کرده اند و این تا حال که ما این شعرها را خوندیم و شنیدیم اونجا این هفت شاعران که هستند یکی مهدی باقر یکی بلرام شکرا یکی نقی ابباس کیفی و این چهارمین شاعر من به شما معرفی می کنم دکتر عزیز مهدی است پدرش هم استاد زبان فارسی است ولی من یقین دارم که هر حرفی که او از یاد گرفته از بابای یا خود یاد نگرفته و این کار و کوشش اصلی این پسر است چند سال پیش من این مجموع سلود را دیده بودم، واقعا شاعر برجسته، من اون وقعی که دیدم، متوجه شدم که این واقع شاعر برجسته امروز و فردا خواهد شد برای اینکه انجا که اونجا که مصری از هر شعر اونجا نوشته شده بود، نیاز نبود که ما اونو یه عنوان درک کنیم معلوم میشد که خودش از آغاز تا انتها، این شعر مکمل، یه شعر مکمل بوده، کامل بوده پس من، در معرفی او دو بیت می خوونم، نوبه ها به سیر گلشنه هندوستان. زیبه رمد به سیر زیبا در تودی به جای پر برارت برگ پان. چشم مردم از سواده هند روشن می شود گر نیارد کسمتای سرمی را از اسفهان من این شعر را برای این جارای می دهم که در فرهنگ هند میزبانی و مهمانی از پان شروع می شود پس اون شاعر جوان این جم آخرین شعر است پس به خدمت شنوندگان عزیز خواننده خیلی به نام خدا خدمت تمامی شنوندگان عزیز در رادیو دری رادیو هند و دوستانی که این برنامه رو دارند گوش میکنند سلام عرض میکنم و تبریک روز جمهوری شدن هندستان را به تک تک شنوندگان ابراز می نمایم یک غزلی تقدیم غزل عاشقانه تقدیم دوستان میکنم امیدوارم اشتباه نخوانم. بوی نارنج آمد از آرامگاه پیر ما بوی نارنج آمد از آرامگاه پیر ما شد دعای صبحگاهی ناله شبگیر ما از قضا باد سبا بر طربت لیلی وزید از قضا باد سبا بر تربت لیلی وزید زلف ها برباد داد از قصه زنجیر ما دوستان این داستان آوازه افاق شد خاجه شیراز هم آگه شد از تقدیر ما خاجه حافظ را قسم دادم به آن فال عزیز بلکه از مسجد سوی میخانه آید پیر ما در ازل ایزد بوت من را دلی از سنگ داد در ازل ایزد بوت من را دلی از سنگ داد لا اقل ای کاش بر سنگی نشیند تیر ما لولیان فارس میگویند سیاد دلند قدر این زحمت نمی ارزد مگر نخجیر ما در همین سامان مگر سامان پذیرت تا ابد درد بی درمان ما و کار بی تدبیر ما یار شیرین کار من آن کیمیای تلخوش یار شیرین کار من آن کیمیای تلخوش کنج شیراز شما یا گوشه کشمیر ما این قذلی تقدیم دوستان شنوندگان عزیز نامید نشد شامم از بوی تو در هند نامید نشد شامم از بوی تو در هند هر است نشانیست زگیسوی تو در هند جا مانده دلم در خمگی گیسوی تو آنجا، اینجا منم و سلسله موی تو در هند محتاب در آنجا، دل بیتاب در اینجا تابیده به بیتابی من روی تو در هند هر جا که کنم روی رخ ماه تو بینم تا قبله من نیز بود سوی تو در هند معبد بود از بوی خوش موی تو سرشار معبد بود از بوی خوش موی تو سرشار رنگین شده بازار چنان کوی تو در هند همراه منی, و هر, همراه منی هر قدم و هر نفسم را بازوم گره خورده به بازوی تو در هند همراه منی هر قدم و هر نفسم را بازوم گره خورده به بازوی تو در هند دیروز به یادت سپری, سپری شد چه قروبی دیروز به یادت سپری شد چه غروبی خورشید و من و چشم غزلگوی تو در هند دیروز به یادت سپری شد چه غروبی، خورشید و من و چشم غزلگوی تو در هند یارا به من از دور نظر کن که دلم را سیاد کند دیده آهوی تو در هند یا را به من از دور نظر کن که دلم را سیاد کند دیده آهوی تو در هند در ادامه این شیرخانی به مناسبت روز جمهوری هند اکنون بنده سید نقی عباس کیفی که جزو یکی از شاعران این جمع بودم جسارتان و با ادب اجرا کننده این برنامه پروفسور خانم بلقیس حسینی که استاد بازنشسته دانشگاه دهلی هستند و همچنین معلف و مسحهی چندین کتاب به زبان فارسی که هم در هند هم در ایران و به طور مجموع میتود گفت که در کل جهان فارسی مورد استقبال قرار گرفته را به نوع خود دعوت میکنم که از شعرهای خود ما را شیرین کام بسازند خانوم پروفسور بلقیس حسینی در خدمت شما هستند اصلا شاعر نیستم ولی اینها ما رو در زمره شاعران کشیده اند و من خودم برای خودم و مرا اونجا نشوندند که یک شعر از استاد نظیری میبینم جز حاجت اخوان نسزد تحفه یوسف جز حاجت اخوان نسزد تحفه یوسف اینجا نرسد ارزه تجمل همه کسرا حالا نباید ما فراموش کنیم که ما اینجا نشستیم برای برگزار کردن جشن جمهوری کشور خودمون و هر سخنی و هر قدمی که ما داشته باشیم باید برای حریت و آزادی باشه و فراموش نکنیم که وطن چقدر ارزش دارد در زندگانی یک انسان اگه وطن نباشد پس انسان چطور هست؟ ما در این دنیای مادی میبینیم که اگه پدر و مادر نباشد بچه یتیم میگردد اگه کشور نباشد اون موقع هم آوارا و غریب میگردد و بدتر از یتیم میشود هیچ کس قبول نمی کند که تو اهل کجایی و کجایی من اینجا احساسات خود را به این صورت ارائه می دهم شنوندگان عزیز به خدمت شما سلام آزاد وطن بادا از دست ستمکاران این حرمت کشور را با جان خرید اییمگوششم که جهه در دری باشد ولی میدونم که موفق نمیشم ولی باید برای همدلی دوستان افغانی من کوشش میکنم قبولشون باشد آزاد وطن بادا از دست ستمکاران این حرمت کشور را با جان خریدیم این قوف منو تو سی است این مسکن سیمرغ است این قوف منوتو است این مسکن سیمرغ است پیراهن زندان را مستانه دریدیم پیراهن زندان را مستانه دریدیم چون موج می خرامت چون موج می خرامد دریای خون شهده چون موج می خرامد دریای خون شهده غلطی ده به هر بر برساحل آزادی خندان رسیده ایم خندان رسیده ایم یک شری دیگه هم بازی چوگان چون با تو په سرم بوده بازی چوگان چون با تو په سرم بوده با تیغ ما سرها را بریدائیم با تیغ احنسا سرها را بریدائیم خیلی ممنون جسارت کردم که پیش شاعران چند احساسات خود را را دادم همیشه دعاگو هستم برای این شاعران جوان و برای سلامتی کشور و برای همزیستی ما اهل کشور.